به جای قدردانی از تفاوت های بین زن و مرد، بعضی فرهنگ ها شاید بخوان مرد و زن نقش و وظایفشون رو با هم تقسیم کنن و نتیجه احتمالی اون نامیدی خواهد بود. اگه مایلی تفاوت های واقعی و آزادی بخشه بین زن و مرد رو یاد بگیرید، درس امروز به شما در این مورد کمک خواهد کرد و خانوم که الان دارن گوش می‌کنن باید آماده بشین که تحسین بشن. بیاید با هم گوش کنیم. در جلسه گذشته ما بعد از بررسی برقراری ارتباط روی سازگاری تمرکز کردیم و بعد به آیاتی نگاه کردیم که به سازگاری مربوط می شدن. بلخص این آیات کتاب مقدس مربوط به تعریف نقش هر یک از طرفین بود. بعد دیدیم که سازگاری چیزی فراتر از سازگاری جسمانی هست. اگر بعد جسمانی ازدواج درست باشه گفتیم که اون ده درصد از رابطه رو تشکیل میده. اگر این بود درست نباشه و مشکلی در روابط زناشویی باشه، اون موقع این میتونه 90 درصد روابط رو شامل بشه. اما کل رابطه ازدواجی نیست. پس ناسازگاری فقط ناسازگاری جنسی نیست. بقیه یه مسئله سازگاری مربوط به چیزهایی مثل سازگاری ارزشی میشه. آیا هر دوی شما های مشترکی داری؟ آیا ارزشهای شما با هم سازگارند؟ این مسئله مهمی در سازگاری هست ما اینها رو بررسی کردیم و بعد سازگاری بر سر نقش زن و مرد رو دیدیم و اون مربوط به تعریف و برداشت از نقش بود شما نقش یک شوهر رو چطور تعریف می کنید؟ نقش پدر، نقش مادر و نقش زوجه رو آیا بر سر این تعریف با هم توافق دارید؟ اگر موافق نیستید شما پتانسیل بزرگی برای ناسازگاری دارید اگر هر دو ایماندار هستید و ایمان دارید که خدا نقشه ازدواج خانواده رو طرح کرده میتونید انتظار داشته باشید خدا بتونه اون رو برای شما پاک نگه داره اگر شما به این ایمان دارید اگر ایمان دارید که کتاب مقدس نقشه ما هست اگر ایمان دارید که کتاب مقدس کتابی الهامی هست و کلامی از جانب خدا در این مورد هست اون موقع این توان بالقوه رو برای سازگاری دارید که بر سر چیزهایی مثل تعریف نقش ها توافق کنید این آیه‌ای بود که ما بهش نگاه کردیم اول پتروس آخرین آیه از باب دو و هفت آیه اول از باب سه این متن مهمی در موضوع تعریف نقش ها هست تعریف کتاب مقدسی نقش ها و ازدواج این متن مهم هست اولا به خاطر اینکه این واقعیت رو به تصویر میکشه که پتروس همون مثال رو برای ازدواج به کار میبره که پولس استفاده میکنه هر دوی اونها در این مورد توافق دارند مثالی که مکررن کتاب مقدس برای ازدواج به کار میبره مسیح و کلیسا هست. آخرین آیه از باب دوی اول پتروس به این اشاره داره این واقعیت که مسیح نگهبان جانهای ماست مسیح و کلیسا یک تمثیل هست. پولس و پتروس میگن این نمونه رو دیدید بسیار خوب زنان شما کلیسا هستید و شما مردان شما مسیح هستید ما این رو در افسوسیان باب پنج هم دیدیم اما این متن مهمی هست به این دلیل که مثالی که هم پتروس و هم پولوس برای ازدواج به کار بردند مسیح و کلیسا هست. از این نظر نیز متن مهمیه که به زنان تعلیم میده چطور با شوهری که ایماندار نیست زندگی کنند. همیشه این یکی از سوالاتی هست که پیش از همه مطرح میشه. تمام این تعالیم درباره ازدواج مسیحی عظیم، شگرف و حیرت انگیز اما اگر شریک شما مسیحی نباشه چی؟ خب اون موقع یک مشکلی هست. من یه بار در جلسه تعلیم کتاب مقدس گفتم که رومیان سنت ای داشتند. اونها سنت‌های ی زیادی داشتن. اما یکی از اونها این بود که اگر شما کسی رو به قتل میرسوندید اونها شما رو به لاشه شخص کشته شده زنجیر می‌کردند و باید تا چندین ماه به همون حال باقی میموندید تا بمیرید. می‌تونید چنین وحشت عظیمی رو تجسم کنید؟ بعد از پایان کلاس خانوم این پیش من اومد و گفت من دقیقا چنین احساسی به شوهرم دارم و احساس می کنم که به یک جسد زنجیر شدم. چون اون مرد روحانی نیست و من به او زنجیر شدم و هیچ راه خلاصی از اون نیست شما نمیتونید از این همسفر خلاص بشید خب من نمیدونم که آیا به اون بدی هم بوده یا نه اما ازدواج با یک غیر ایماندار میتونه ازدواج بدی باشه زنی در چنین وضعیت چیکار باید بکنه من معتقدم که کتاب مقدس راهی دو طرفه هست همونطور که پتروس به این زن میگه که چیکار بکنه فکر میکنم این میتونه در مورد همه صدق بکنه این میتونه برای مردان هم پیش بیاد اگر زن شما ایماندار نباشه چطور از پس او بر این متن از این نظر هم مهمه که یکی از متنهای مشورتی ازدواج هست که این واقعیت رو به تصویر میکشه که کتاب مقدس بسیار واقعگرا هست کتاب مقدس دو شخص رو در شراکت از هم جدا میکنه و با زنان در مورد زنان صحبت میکنه. اون واقع گراه هست چون میدونه فقط یک زن میتونه تونه کاری در مورد زن بکنه. زن نمیتونه تونه کار زیادی در مورد مرد بکنه پس توجه داشته باشید وقتی پطرس موقعیت مشکل رو باز میکنه هیچ کلمه ای در مورد مرد نمیگه. او فقط میگه که زن با فیض خدا میتونه چطور باشه؟ این بسیار واقع گرایانه هست. طبیعت غیرواقع گرایانه ی انسان، دوست داره که این رو وارونه بکنه. معمولاً مرد متخصص اشکالات زن هست. من مردانی رو میشناسم که متخصص اشکالات زنانشون هستند و زنانی رو میشناسم که متخصص اشکالات شوهرانشون هستند. اما ببینید این غیرواقع گرایانه هست. اینجوری راه به جایی نخواهید برد. شما در حقیقت مسئول اون شریک نیستی. هر کسی مسئول خودش هست. شما به جای همسرتون داوری نخواهید شد. هر کسی برای خودش داوری خواهد شد. داوری که کتاب مقدس به تصویر کشیده این هست که همه ما پاسخگوی اعمال خودمون خواهیم بود. نه اعمال همسرمون. پس این مثالی از این واقعیت در مشاوره ازدواج در کتاب مقدس هست که کتاب مقدس به طور واقعگرایانه دو شخص را از هم تفکیک میکنه. واقع گرایی میگه حالا اگر همسر شما از کلام اطاعت نمیکنه این میتونه نشون بده که او غیر ایماندار هست، و یا میتونه ایماندار باشه اما از آنچه که باید انجام بده امتنا میکنه. چند نفر از شما چنین مردانی رو میشناسید آیا مردانی رو میشناسید که همیشه کاری رو میکنند که باید بکنن خب ببینید زنان زیادی هم در این گروه قرار میگیرن اما این بخشی واقع گرایانه در مشاوره هست چون به زنان میگه که فقط اونها میتونن کاری در مورد زنان بکنند و بعد میبینیم که به اینجا می رسیم که میگه اگر شوهر شما در جایگاه خودش قرار نداره شما نمیتونید او رو نصیحت بکنید و به جای خودش برگردونید نمیتونید او رو به جای خودش بکشونید نمیتونید با قهر زدن او رو به جای خودش بکشونید او میگه بدون هیچ کلمه ای، این مشورتی حکیمانه هست. من فکر میکنم چیزی که او میگه اینه تنها چیزی که میتونه این مرد رو وادار کنه در جایگاه خودش قرار بگیره این هست که ببینه شما در جایگاه خودتون ایستادید من مردی رو میشناختم که خیلی بددهن و سخت دل بود. بالاخره وقتی او ایمان آورد به من میگفت من دیدم اگر هر دوی ما سعی بکنیم کاری رو که همسرم میکنه انجام بدیم خارق خواهد بود. خب این راهیه که انتظار میره موثر باشه. این راهیه که کار میکنه. پتروس به زنی در این وضعیت میگه اگر فقط یک چیز باشه که بتونه تأثیر کنه همین روش خواهد بود. حالا او نمیگه که این همیشه تاثیر خواهد کرد. چون که اون مرد اراده یازاد داره خدا ما رو به شباهت خودش خلق کرده یکی از ابعادی که ما رو به شباهت خودش خلق کرده این هست که ما رو موجوداتی با حق انتخاب آفریده خدا از قوانین خودش بر نمی کرده. اگر خدا نخواد قوانین خودش رو در مورد انتخاب و تصمیم اون مرد نقض کنه یقیناً شما هم نمیتونید پس اون مرد اراده ای داره او میتونه انتخاب کنه او میتونه تصمیم بگیره بله یا خیر اما مهم نیست که او چه تصمیمی میگیره. نصیحت پتروس به زنان در این وضعیت همین هست من مردانی رو میشناختم که در همین وضعیت بودن و فکر میکنم شما میتونید همین مشاوره رو به اونها هم بدید. و اونها بگید موعظه نکنید. یک بار مجبور شدم به مردی بگم کتاب مقدس ترزیر از هندلی بچسبون و فقط زمانی که زنت خانه نیست اون رو بخون. چون که این میتونه او رو خیلی بترسونه. او فکر میکنه شوهرش عقلش رو از دست داده. اگر ببینه شوهرش داره کتاب مقدس میخونه، فکر میکنه شوهرش دیوانه خواهد شد و ما هرگز در حضور او جلسه کتاب مقدس نمیذاشتیم. این مرد سه سال با او مدارا کرد و بعد از سه سال بالاخره اون زن ایمان آورد. پس این نوع مشاوره یک راه حل دو طرفه هست. یکی از دلایل دیگری که این مرد مهمه اینه که به تعریف نقش اشاره میکنه. در این متن به تعریف نقش زنان اشاره شده، او بیشتر در متنی مطرح شده که بعداً به اون نگاه خواهیم کرد. اما آخرین آیه از این متن، آیه هفت به نقش شوهر اشاره میکنه. ما قبلا در افسوسیان پنج دیدیم که نقش شوهر و پدر واقعا چالش برانگیز هست. در واقع اونقدر چالش برانگیزه که بدون فیض خارق خدا غیر ممکن است. اگر خدا به شما کمک نکنه، شما به عنوان یک مرد احتمالاً نمیتونید اون ای رو که در افسوسیان 5 به عهده شما گذاشته شده انجام بدید. به ما به عنوان مردان گفته شده طوری محبت کنید که عیسی محبت کرده. مانند عیسی ایثار کنید. مانند عیسی باشید. برای همسرتون مسیح باشید. برای همسرتون همون طور باشید که مسیح برای کلیسا بود. یک مرد بدون کمک خارق‌العاده الهی چیکار می‌تونه بکنه؟ اگر ما واقعا وقتی میگیم مسیح در ما زندگی می‌کنه صادق باشیم مسیح در شما امید جلال هست. اگر این فقط باد هوا نباشه و واقعیتی در زندگی شما باشه، اون موقع بی دلیل نیست که میگیم برای او مسیح باشید. چون مسیح در شما هست و اگر مسیح در شما هست شما رو تقویت میکنه. بعد شما به وسیله مسیح میتونید همسرتون رو همونطور محبت کنید که مسیح کلیسا رو محبت کرد. این روشی هست که باید کار بکنه. به مرد در افسوسیان 5 گفته شده، همانطور که مسیح کلیسا رو به خودش پاک و بی عیب تقدیم کرد، مرد هم باید همین کار رو بکنه. میدونید وقتی شما همسرتون رو به خودتون تقدیم می کنید، مثل این هست که او رو معرفی می کنید مثل این هست که او رو برای اولین بار به اطرافیانتون معرفی می کنید او رو چطور معرفی می کنید؟ خب پولوس در پنج 5 میگه، اگر مردی زنش رو همانطور که مسیح کلیسا رو محبت میکنه، محبت کنه و خودش رو همون طور به زنش بده که مسیح خودش رو به کلیسا داد و اگر برای اون مسیح هست اون موقع باید او رو بدون لکه و بیعیب معرفی بکنه به عبارت دیگه باید تماما در هر بعدی خودش رو وقف رفاه او بکنه به لحاظ روحانی، احساسی، اقلانی، جسمانی و به هر روشی که میخواد کمال او رو ببینه من همیشه وقتی مردی به خالی بودن و آشیانه فکر میکنه تحت تاثیر قرار می گیرن. یعنی زمانی که بچه ها بزرگ شده و خانه رو ترک کردند او میگه همسرم چیکار خواهد کرد او آموزش نداره پس شوهرش رو تشویق میکنه که به مدرسه بره و مدارجی رو طی کنه و مهارتهایی کسب کنه تا بعد از اینکه ها رفتن بتونه زندگی و شخصیتی برای خودش داشته باشه ببینید این مردی هست که به همسرش فکر میکنه او پیشاپیش فکر میکنه و با خودش فکر میکنه من میخوام که زنم از عهده زندگی بر بیاد. ببینید این تعریف نقشی هست که به مردان داده شده. حالا چند چیز اضافی هم برای همه مردان هست. بذارید اول پتروس سه هفت رو براتون بخونم. شما نیز ای شوهران، باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهمی و شریک میباشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید. مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. حالا شما تعریف نقش رو در این آیه میبینید. این کلمه نیز البته شما رو به آیات قبلی اول پتروس دو ارجاع میده. خب مثل مسیح و کلیسا. این بخش بزرگی از تعریف نقش ما هست. اما بعد اینجا بعضی چیزهای خیلی عملی هم هست. پتروس یک شبان پیر هست و فقط قلبش رو با ما در میون میذاره. تجربیات زیادی رو که داره به ما انتقال میده و به این مردانی که ایماندار هستند، میگه با اونها ساکن بشید حالا شاید شما فکر کنید که نیازی به گفتن این نباشه شما به همین منظور ازدواج کردید اینطور نیست پس میتونید با او زندگی کنید بازم یادم میاد وقتی من و همسرم با هم نامزد بودیم آهنگی بود که اون روزها خیلی رایج بود شعر آهنگ این طور بود دو نفر آدم تنها در سپیده صبح بیشتر عاشق هم میشن به جای اینکه به هم شب بخیر بگن اون روزها این آهنگ معروفی در امریکا بود یکی از دلایلی که من و همسرم با هم ازدواج کردیم این بود که میتونستیم با همدیگه باشیم حالا به نظر شما مزهک نیست به مردی که ازدواج کرده تا همیشه بازنش باشه بگیم با او ساکن شو اما به نظر من این مزهک نیست اگر شما مردان متعهل حتی مسیحیان متعهل رو بشناسید میبینید که این مزهک نیست من تعجب میکنم وقتی مردان مسیحی رو میبینم که متأهل هستند و بحانه های غیر قابل تصوری برای فرار از خانه پیدا میکنن. دلشون میخواد هر جایی باشن جز خانه درست مثل اون موردی که خانمی چوب گلف رو از ماشین همسرش بیرون انداخت و دور شدهره. آخرین چیزی که توی ماشین اون مرد بود چوب گلف بوده. فکر می کنید اون زن سعی می کرد چی بگه؟ او داشت میگفت: چرا با من نمی نمیشی؟ گلف برای تو مهمتر از من هست. فوتبال برای تو مهمتر از من هست. هر چیزی زیر این آسمان کبود برای تو مهمتر از من هست. پس میبینید که عجیب نیست که به مردان گفته شده با همسرانتون ساکن بشید. در کتاب جامعه سلیمان او که حکیمترین مرد عالم بوده گفته دنبال با دویدن بیهوده است. مردی که ثروت غیر قابل حسابی در بانک داره و بین 18 تا 20 ساعت در روز کار میکنه و فرزندی نداره و همسرش به او نیاز داره چرا این همه کار میکنه؟ چرا اعتیاد به کار داره؟ این باطل اباطیل هست؟ اما ببینید مردان با خودشون میگن من باید نان خانوادم رو تامین کنم. اما هیچ مشکلی در تامین نان خانواده نیست. اگر به اصل مسئله نگاه کنید واقعیت اینه که اونها نمیخوان خونه باشن. اونها ترجیح میدن جای دیگهای باشن. پس این تابلو رو از دیوار پایین نیارید که روش نوشته با اونها ساکن بشید. او کلمه ای رو به کار میبره که معنیش اینه در خانه باشید با اونها راحت باشید. مردم وقتی ازدواج میکنند باید در کنار هم احساس راحتی کنند گفته میشه که این کاریه که مردان باید بکنن. بعد او میگه با درک و تفاهم بعضی از ترجمه ها گفتن با شناخت. من اینو دوست دارم که میگه با شناخت و فکر میکنم شناخت همسرتون آسانتر از درک او هست. اما به این چالش نگاه کنید. شما چه مقدار زنتون رو میشناسید؟ اگر او نیاز ضروری پزشکی داشته باشه، آیا میتونید سابقه پزشکی او را آماده کنید؟ آیا اگر او به لحاظ روحی بیمار بشه و مجبور بشه به آسایشگاه روانی بره، آیا میتونید سوابق اجتماعی او را آماده کنید؟ من قبلا سوابق اجتماعی برای روانشناسان آماده میکردم. شما باید اطلاعات زیادی از شخص داشته باشید تا بتونید سوابق اجتماعی براش تهیه کنید. اونها به شما یک مقدمه میدن و شما حدود پانزده صفحه بر اساس اون مقدمه بنویسید. آیا میتونید سابقه اجتماعی همسرتون رو بنویسید؟ آیا او رو به خوبی میشناسید؟ واقعا چقدر همسرتون رو میشناسید؟ خب این چالشی هست که پتروس پیش روی مردان میذاره. به اونها میگه با زنانتون زندگی کنید. با اونها در خانه بمانید. با اونها راحت باشید و این رو با شناخت انجام بدید. با شناخت و درک همونطور که قبلا گفتم در کل مردان در مورد زنان بی اطلاع هستند و به طور خاص در مورد همسرانشون بی اطلاع هستند اما پتروس این تعریف نقش رو به مردان میده اونها باید با درک با همسرانشون زندگی کنن. بعد او میگه به همسرانتون احترام بذارید معنی این چیه ببینید در انتهای افسوسیان پولس همین چیز رو به زنان گفته شوهرتون رو گرامی بدارید به او احترام بذارید من وقتی از خیلی از زنان می‌خواستم که به اونها احترام بذارند، اونا جواب می‌دادند به او به او احترام بذارم؟ مگه قبل از ازدواج او به من میگفت که چیکار باید بکنم؟ این چیز محترمانه ای نیست که در مورد همسرتون بگید. شوهرتون رو گرامی بدارید، به او احترام بذارید خب همین چیز رو اینجا هم می‌بینیم. عین همون نصیحت به مردان شده. به زنان خودتون احترام بذارید. یک بار من از خانه میخواستم که به همسرش احترام بذاره. او گفت او شما او رو نمیشناسید. او در سال حدود سیصد نظریه میده و هر از گاهی ممکنه یکی از اونها خوب باشه. شاید نتونید تصور کنید هر ای که این مرد ابراز میکرد زن از او انتقاد میکرد و کاملا مشخص بود که این زن هیچ احترامی برای شوهرش قایل نبود. او به نظرات او احترام نمیذاش. او نمیخواست در هیچ چیزی او رو دخالت بده. هیچ اطمینانی به او نداشت و البته این چیز میتونه در مورد مردان هم صدق بکنه عیسی وقتی برای اولین بار شمعون پتروس رو میبینه مثال بزرگی در انجیل یوحنا به ما نشون میده او به شمعون میگه نام تو شمعون هست اما بعد از این کیفا یا صخره نامیده خواهی شد حالا چیزی که این رو جذابتر میکنه اینه که کیفا به معنی صخره هست و نشان نشاندهنده استقامت هست اگر شما شمعون رو میشناختید او هر چیزی بود جز یک شخص با استقامت شاید برازنده ترین کلمه برای او میتونست متزلزل باشه اما وقتی عیسی او رو ملاقات میکنه او رو سخره صدا میکنه و سالها او را سخره صدا میکنه و بعد در کتاب اعمال میبینیم که او واقعا سخره شده او صخره ای نبود که کلیسا بر روی او بنا بشه. او در نوشته های خودش این رو به شما میگه اما حالا او یک سخره است. او استواره این رو در مورد فرزندانتون امتحان کنید. این رو در مورد همسرانتون امتحان کنید. مردم مستعد هستند که هر لقبی که به اونها بدید اون طور زندگی کنند. جانبه این هونت پیشه معروف امریکایی به شما میگه باید یک مرد رو به اسمی صدا کنید که دلش میخواد بشنوه. خب این نصیحت بدی نیست، شوهرتون میخواد او رو چی صدا کنید؟ او میخواد چی باشه؟ آیا به قدر کافی او رو باور میکنید؟ اونقدر به او احترام قائل هستید که او رو سخره صدا کنید؟ حتی اگر سخره نباشه و به او بگید که من به تو ایمان دارم؟ من فکر میکنم که همین چیز در نقش مقابل هم امکان داره. او میگه با پذیرفتن این واقعیت که زنتون ضعیف هست، به زن ظرف زعیفتر احترام بذارید. در سراسر دنیا وقتی سفر میکنید، متوجه میشید که مردان از ضعف جسمانی زنان سو استفاده میکنند. در فرهنگ های عقب مانده شما همیشه این رو میبینید. من در کشورهای عقب افتاده بودم و در این فرهنگ گاهی چیزهایی رو میبینید که شما رو شکه میکنه. بعضی از مردم فکر میکنند که پولس زنان رو تحقیر میکنه. اما بذارید چیزی بهتون بگم. هم پتروس و هم پولس همیشه در پی بلند کردن شعن زن بودن. من داستانهایی از وایکلیف شنیدم که چطور کتاب مقدس رو به زبانهایی برای دیگر قبایل ترجمه میکنند من این مکان های بدوی رو دیدم جایی که اونها این کار رو انجام میدادن این مردم حتی زبان مکتوب ندارند از این رو 15 سال طول کشید تا این میسیونر متخصص توانستن زبان مکتوبی برای اونها بسازن تا اینکه اونها بتونن کتاب مقدس رو به زبان خودشون بخونن یکی از این مترجمین میگفت که در گینه نو قبایل زیادی وجود دارند و رئیس قبیله زنان زیادی داره چون که او رئیس هست اونها وقتی به این متن میرسیدن که میگه زنان خودتون رو احترام کنید، به ضعف او احترام بذارید، از ضعف او سوء استفاده نکنید، زن خودتون رو طوری محبت کنید که مسیح کلیسا رو محبت کرد. یکی از این مترجمین این داستان رو میگفت که یک شب وقتی اونها دور آتشی جمع بودند و این متن رو میخواندند، چطور بعضی از مردان این قبیله و بعد بالاخره رئیس قبیله بعد از بحثی طولانی تا نیمه شب در مقابل خدا قسم خوردند که زنان خودشون رو محبت کنند. این کاری انقلابی در اون قبیله بود. عهد جدید این کار رو در سراسر دنیا انجام داده. این در بسیاری از فرهنگ ها نظریه انقلابی هست. زنان خودتون رو محبت کنید. اما بذارید از شما مردان بپرسم. آیا زن خودتون رو محبت می از یک تا ده به خودتون چند امتیاز میدید؟ آیا او رو احترام می کنید؟ من معتقدم این مبنای چیزی هست که ما به اون جوانمردی میگیم. جوانمردی حقیقی از اینجا معلوم میشه. جوانمردی اینه که مردی به ضعف یک زن احترام بذاره. رو راست بگم این برای من خنده داره وقتی اینجا میگه به زنان خودتون احترام بکنید، کسی که ظرف ضعیفتر هست وقتی به من و همسرم نگاه کنید، میپرسید کی ظرف ضعیفتر هست. و توجه داشته باشید که زنان و مردان زیادی اینطوری هستن. زنان از بسیاری جهات قوی تر هستند. اونها متحمل تر از ما هستند. اونها از خیلی جهات از ما قوی ترند. اما از بعضی جهات اونها به اندازه مردان قوی نیستند و مردان میتونند از این سوء استفاده کنند و در سراسر دنیا این کارو کنند. اما جوانمردی اینه که شما از ضعف زنها سوء استفاده نکنید و به اون احترام بذارید. خیلی چیزها توی زندگی هستند که من دوست دارم بارها اونها رو انجام بدم. وقتی من به 64 سال گذشته فکر می کنم چیزهایی هستند که هرگز نمی دوباره اونها رو تکرار کنم اما یک کار هست که دوست دارم باز همون انجام بدم و اون معاشقه هست. دوست دارم میتونستم به گذشته برگردم و چیزی رو که الان در مورد همسرم میدونم اون موقع بدونم و به او اظهار عشق کنم. بهتون بگم هر کاری که از دستم برمیومد برای احترام به او میکردم. چون الان چیزهایی در مورد او میدونم که اون موقع نمیدونستم. خب این تعریف نقشه مردان بود. حالا باز برمیگردیم به تعریف نقش زن. قبل از اینکه مروری کلی از نقش زن بکنیم، دوست دارم که نقش زن را از امثال و براتون بخونم. مطمئنم که خیلی از شما این متن رو شنیدی، اون درست در اواخر کتاب امثال هست. این یکی از بزرگترین متن ها در کتاب مقدس در مورد تعریف نقش زن هست. به چیزهایی که هفته گذشته گفتیم فکر کنید و به این گوش کنید. زن ساله را کیست که پیدا تواند کرد؟ قیمت او از لعلها گرانتر است. دل شوهرش بر او اعتماد دارد و محتاج منفعت نخواهد بود. برایش تمامی روزهای عمر خود خوبی خواهد کرد و نبدید. پشم و کتان را می و به دستهای خود بارغ کار می کند. او مثل کشتیهای تجار است که خوراک خود را از دور می آورد. وقتی که هنوز شب است برمیخیزد و به اهل خانهاش خوراک و به کنیزانش حسه ایشان را میدهد درباره مزرعه فکر کرده آن را میخرد و از کسب دستهای خود تاکستان قرس می نماید کمر خود را با قوت میبندد و بازوهای خیش را قوی می سازد تجارت خود را می بیند که نییکست و چراغش در شب خاموش نمی شود دستهای خود را به دوک دراز می کند و انگشتهایش چرخ را می گیرد. کفهای خود را برای فقیران مبسوط می سازد و دستهای خیش را برای مسکینان دراز می نماید. به جهت اهل خانهش از برف نمی ترسد زیرا که جمیع اهل خانه او به اطلس ملبس هستند. برای خود اسبابهای زینت می سازد. لباسش از کتان نازک و ارغوان می باشد. شوهرش در دربارها معروف می باشد و در میان مشایخ ولایت می نشیند. های کتان ساخته آنها را می فروشد و کمربندها به تاجران می دهد. قوت و عزت لباس اوست و درباره وقت آینده می خندد. دهان خود را به حکمت می گشاید و تعلیم محبت آمیز بر وی است به رفتارهای اهل خانه خود متوجه می شود و خوراک کاهلی نمی خورد. پسرانش برخواسته او را خوشحال می گویند و شوهرش نیز او را می ستایند. دختران بسیار اعمال صالحه نمودند اما تو بر جمیع ایشان برتری داری جمال فریبنده و زیبایی باطل است اما زنی که از خداوند میترسد ممدوح خواهد شد وی را از ثمره دستهایش بدهید و اعمالش او را نزد دروازه ها بسطاید. اینجا نمای زیبایی از نقش و وظیفه یک زن است در همون ابتدا به ارزش او اشاره شده وقتی به ارزش یک زن فکر میکنید به این فکر کنید من معتقدم که در فرهنگ ما به زنان گفته میشه که تنها زمانی میتونن در داشته باشند که نقش و وظیفه برابر با مرد داشته باشند. اونها باید کار مردان رو انجام بدن اما بهتر از مردان. این جایگاه زن در فرهنگ ما هست. بی پرده بگم من فکر میکنم این حرفی گناهالود هست. من فکر میکنم این شرماوره ما در جلسه اول گفتیم که اگر دو نفر ما واقعا مثل هم باشیم اون موقع وجود یکی از ما ضاعت هست. زمانی هست که ما به جای حل کردن تفاوت اون رو گرامی می‌داریم و یقینا یکی از جاهایی که ما تفاوت رو گرامی می‌داریم تفاوت بین نقش و وظیفه مرد و زن هست. اونها وظیفه و نقش مشابه با مردان ندارند ارزش یک زن بر این مبنا نیست که او باید نقش و وظیفه یکسانی با مرد داشته باشه خب ارزش یک زن رو بر چه مبنایی قرار میدید من معتقدم آیاتی مثل اینها که الان دیدیم و آیاتی که قبلا به اونها نگاه کردیم به ما میگن که یک زن تکمیل کننده مرد هست. این مفهومش اینه که زن سازنده مرد هست. پس یکی از راههایی که ارزش زن به تصویر کشیده شده شوهر او هست. توسط شوهرش که مانند یک قاضی در دروازه می نشیند در قدیم دادگاه ها نزد دروازه ها برپا می شود. ببینید اگر یک زن سازنده مرد باشه و باید یک مرد رو کامل کنه به مرد کمک میکنه که صخره ای باشه مردی که فکر نمیکنه به خودی خود صخره بوده این گونه چیزها معیاری برای تعیین ارزش زن هستند شوهر او چگونه عمل میکنه آیا او مردی روحانیه رو راست بگم من فکر میکنم نصیحت پتروس از این نظر عاقلانه است چون که پتروس در اول پتروس سه به زنان میگه تا زمانی که شوهرتون در جایگاه خودش قرار نگیره هرگز زندگی ایده‌آلی نخواهید داشت حالا اگر او در جایگاه خودش نمیسته تو باید جای خودت بیستی باید این کارها انجام بشه اما هرگز برای یک زن خوب نیست که در جایگاه مرد قرار بگیره پس بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که این توصیه رو انجام بدید روحانی باشید مطیع باشید ساچت باشید مهربان باشید و در جای خودتون بیستید و بعد اگر این تأثیر کرد و او در جایگاه خودش قرار گرفت این برای شما و فرزندانتون ایدئال خواهد بود چون تمام خانواده همونطور که در کتاب مقدس در قانون ازدواج خانواده دیدیم از این وضعیت بحرمند خواهند شد این یک قانون هست و ابعاد معینی برای اون هست این به اون مرد بستگی داره که در جای خودش قرار بگیره یا اون زن در جای خودش قرار بگیره. و فرزندان در جای خودشون این یک بسته هست پس زن نقش قابل احترامی به عنوان سازنده مرد داره و ارزش او بستگی به این داره که آیا شوهر او روحانی هست موفق هست شاد و کامیاب هست منظورم این نیست که بگم اگر مردی روحانی نیست و موفق نیست تقصیر زنشه اصلا منظورم این نیست اما این میار خوبی برای سنجش ارزش زن هست و میاری که زن با اون سنجیده میشه شوهرش هست. آیا او جمیع این سفات رو با هم داره؟ آیا اونی که باید باشه هست؟ حالا وقتی در این راستا پیش میریم، میخوام اشاره کنم که یک نقش فداکارانه هم هست. امروز نسلی که منیت داره میگه من این کارو نمیکنم. او خودش میتونه این کارو بکنه. او هر کاری بخواد میتونه بکنه. این مشکل او هست. من کار خودم را انجام میدم و خودم رو وقت و انجام کارهای شوهرم و تکمیل کردن اون نخواهم کرد. من این کارو نمی کنم. ببینید امروزه ما با چنین نسلی روبرو هستیم. این ذهنیتی هست که ما امروزه داریم. و من فکر می کنم ما طوفان درو می کنیم، چون که این فلسفه بسیاری از زنان امروزی هست. اما این زنی که در کتاب مقدس می بینیم، او ارزش داره چون شوهرش در جایگاه خودش هست و بعد بچه هاش بزرگ میشن و او را مبارک میخواند. ببینید یک زن انسانساز هست. حالا به این فکر کنید، میتونید نقش برجسته از وظیفه ی انسانسازی تصور کنید؟ این کاملا مهمه اینطور نیست؟ زن من تابلویی به دیوار خونمون آویزون کرده چیز خارق‌العاده‌ای هست که یکی از پسرانمون برای او ساخته و در روز مادر به احترام او تقدیمش کرده زیر این تابلو در یک طرف پلاک کوچکی هست که روی اون نوشته یک سال بعد از این مهم نیست که حساب بانکی من چقدر پر باشه در خانه ای زندگی کنم. یا چنو ماشینی سوار بشم اما دنیا میتونه متفاوت باشه چون که من در زندگی یک بچه مهم بودم انسانساز بودن بزرگ کردن بچه ها پرورش اونها حضور داشتن برای بچه ها یکی از برجسته ترین اناوینی هست که میتونیم بهش فکر کنیم و من واقعا قصه میخورم وقتی میبینم این نقش و وظیفه ناچیز شمرده میشه چنان که گویی زنان شهروندان درجه دو هستند. زنان درجه یک زنانی هستند که شغلی دارن. من فکر میکنم داشتن شغل برای یک زن چیز بدی نیست و فکر میکنم اینها چیزهایی تماما مربوط به خود افراد هستند. من در واقع اصول رو با شما در میون میذارم. این شما هستید که باید تصمیم بگیرید چطور اصول رو به کار بگیرید. اما زنی رو که میگه من میخوام انسان ساز باشم، من میخوام مردم رو بسازم دست کم نگیرید. وقتی نمای این زن رو بررسی می‌کنید، او کاملاً چنین چیزی هست. او کارهای زیادی انجام می‌ده. من فکر می‌کنم او زندگی هیجانانگیزی داره. من این امتیاز و سعادت رو داشتم که یک چنین مادری داشتم و با یک چنین زنی ازدواج کردم که زن بودن رو نقش برجسته‌ای برای خودشون می‌دونستند. من غالباً به یاد مادرم می‌افتادم چون که متوجه‌ام که این زن چقدر مشغول بود. او خسته نمی‌شد. او گیج نمیشد که سر موقعش چه کاری انجام خواهد داد این زن واقعا مشغول مشغول بود او وقتی مریض شد من ده ساله بودم و در همون سنین نوجوانی من مادرم را از دست دادم به این دلیل من غالبا به خاطرات گذشته برمیگردم اما خاطراتی که از او دارم همیشه پرتحرک است هرگز نمیتونم مادرم رو تصور کنم که در حال کار کردن نبوده باشه او رختها رو می روی بند آویزون میکرد اون موقع خوشال نداشتیم لباسها رو تا میکرد، آشپزی میکرد، نان میپخت همیشه در حال حرکت بود او حتی وقتی با ما صحبت می کرد، در حال حرکت صحبت می کرد. او همیشه مشغول مشغول بود اون موقع لباس های بچه ها را هم خودش می دو. من فکر می کنم هم و یک چیزی هست که لازم ما حفظش کنیم یک چنین زنی با چنین ارزشی باید مورد احترام قرار بگیره و مجسمه از او ساخته بشه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 به اینجا میرسیم که پتروس میگه اگر شوهر شما در جایگاه خودش قرار نداره شما نمیتونید رو نصیحت بکنید و به جای خودش برگردونید نمیتونید رو به جای خودش بکشونید نمیتونید با قهر زدن او رو به جای خودش بکشونید او میگه بدون هیچ کلمه‌ای این مشورتی حکیمانه هست. من فکر میکنم چیزی که او میگه اینه تنها چیزی که میتونه این مرد رو وادار کنه در جایگاه خودش قرار بگیره این هست که ببینه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 هر چیزی زیر این آسمان کبود برای تو مهمتر از من هست پس میبینید که عجیب نیست که به مردان گفته شده با همسرانتون ساکن بشید آقایون چیزی که امروز در مورد خانم ها شنیدین قابل تحسین نبود و خانومها ما امیدواریم که خدا شما رو با افتخاری که در کلامش برای نقش شما در این دنیا به شما داده تشویق کرده باشه و بالاخره قدر و منزلتی رو که شایستش هستید کست کرده باشید. این تحسینی نیست که این روزها در فرهنگهای دنیایی میشنوید. در واقع اصلا به ندرت میشنوید که دنیا از نقش و وزیفهی که زنان در خونه و خونواده ایفا میکنن قدردانی بکنه. با این حال ما میدونیم که خدا قصد داره که شما مورد قدردانی و تحسین قرار بگیرید.